اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم محمد, وعلي محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام وصلى الله على سيدنا ونبينا سيد السفراء والمرسلين حبيب اله الغالمين ابي القاسم المصطفى محمد <تصفيق> عل اهل قائمین قاهرین وبعد قال رسول الله صلى الله من كنت مولاه فهدا علی مولاه او فعلی مولاه صدق رسول الله صلى الله تبریک و فرارسیدن رسیدن سال روز ایده بزرگ خدا ایام سعیده قدیر خم را به محضر مقدس امام قصر و الله تعالی فرجه و شریف سلوات را عنایت آیت <تصفيق> همینطور عرض تبریک و تهنیت دارم به محضر شما مادران و خواهران گرامی و همه شیفتگان ولایت و امامت در سرتاسر سر گیتی و کشور خودمان افغانستان می خواهم ضمن تاریخ بسیار پر عرج که اتفاق افتاده است چند تا نکته را به عرض برسانم همونطوره که همه ما و شما میدانیم پیامبر اکرم در آخرین حجشان از قبل اعلام کردن به همه کشورهای اسلامی یا به همه سرزمینهای اسلامی که امسال آخرین حج پیامبر است بنابراین هر کس میل دارد امسال حجش رو با پیامبر انجام بده یا الله وقت مسلمانان چون این خبر را شنیدن که امسال پیامبر هم به حج تشریف میارن و آخرین حج پیامبر هم هست و پیامبر هم اطلاعیه داده و اعلامیه داده است هم همه در جهان اسلام و پامی خیزد. لذا مردم از جاهای مختلف و از اقناف مختلف سرزمین‌های اسلامی آماده می‌شوند که به حج امسال باید شرکت کنند از اکناف جهان اسلام مردم به حج مشرف می‌شوند وقتی پیامبر هم از مدینه حرکت می‌کند مدینه و مکه همونطوره که ما و شما می‌دانیم هر دوتا اشتان در کشور عربستان سعودی موقعیت دارد از مدینه تا مکه راه زیادی همچون کشور ما و شما یعنی افغانستان با سرزمین مکه نیست راه کمتر است به هر حال پیامبر موقعی که میخواهد از مدینه حرکت کند به همه دستور میده که امسال همراه پیامبر به حج بروند زنان مردان خانواده پیامبر همه باید امسال به حج بروند به گونه پیامبر دستور میدهد که حتی زنان حامله و باردار هم اجازه نشستن ندارند باید همراه پیامبر امسال به حج بروند چرا چون حج امسال حج ویژه هست و حج مهم هست حتی زنان باردار هم باید به حج بروند شما مادران و خواهران میدانیند که مسئله بارداری برای یک خانم سخت است به گونهای که کارهای سنگین را نمیتواند انجام دهد مسافرتهای طولانی هم سخت است مخصوصاً در مراسم حج که آنجا اعمال مخصوص خودش را دارد هوا هم گرم هست حالا بیا فکر کن برای یک خانم باردار چون این سفر چقدر سنگین می تواند تمام بشه پیامبر دستور میده باید همه حرکت کنن زن و مرد اونی که مشکل داره نداره باردار و غیر باردار لذا همراه پیامبر خانواده پیامبر حرکت کردن زنان باردار بقیه هم حرکت کردن بگونه که تعداد از همه خانوم ها بودن در مسیر راه وضع حمل کردن اولادشان رو به دنیا آوردن اینطوری بوده این حج امسال حج متفاوت از سالهای گذشته بودن حج امسال حج ویژه بوده است دقت کنیم لذا وقت مراسم حج انجام میشه و برمیگرده وقت به سرزمین قدیر خوم میرسد اینجا پیامبر به افراد که پیش رفته بود دستور میدهند برگردند افرادی که پس مانده بود باید برسند و میرسند اینجا منبر درست میکنه از همو بار شطور یا از همو به تعبیر شما زین شطور منبر درست میکنه منبر بزرگ و اونجا پیامبر چند بار از مردم اقرار می گرد. از جمله اقرارش این است آی مردم آیا من پیامبر از خود شما کرده نسبت به خود شما کرده سزاوارتر نیستم همه مردم میگن. بلی بله یا رسول الله بعد از چند بار اقرار گرفتن دوازده مرتبه از ظاهرن. حشدار میدهد پیامبران، ای مردم این گونه حشدار میدهد و در اینجاز پیامبر میفرماید من کنت مولاهو فهادا علی و مولاه هر که من مولایش هستم این علی علیه السلام مولایش هست تا این قسمت این جریان تاریخی همه ما شما میدانستیم و شاید این نکته را نمیدانستیم که خانوم‌مای باردارم در این سفر آمده است. اما نکات اساسی که حالا باید توجه کنیم از اینجا شروع میشه. و اون چیز بانوان در غدیر زنان در غدیر یک حرکت منفعل و خاموش را نداشته است. بلکه زنان در غدیر نقش داشتند زنان در غدیر و بعد از غدیر فعالیت انجام دادند رسالت انجام دادند و زنانی که اسلام به عنوان زن میشناسد حالا یکی جمله از اوصافش رو خدمت شما بیان میکنم بنابر این فکر نکنید که هر کس جنس زنانه داشت باید در اسلام مورد احترام قائل بشه اسلام زنان خاص را به عنوان زن احترام قائل می شود زنان یک تیف خاص از زنان را برایش حرمت قائل می شود و اینهاست که نمونه می گردن و منزلت زن تا آنجای بالا می رود و مهم می شود که حجت خدا بر حجتهای های خدا قرار می گیرد اینا خب شما شنیدیم که امام معصوم علیه السلام فرمود ما دوازده امام حجت خدا بر مردم هستیم ولی مادرمان حضرت زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست این همه جایگاه زن در اسلام است با هر حال ببینیم آخرین حج پیامبر با اون همه اهمیتی که دارد پیامبر زنان رو در مدینه نمی گزارد. زنان رو جا نمی گذارد فقط مردان رو دعوت نمی کند لذا از همگان دعوت می کند حتی زنانی که اون چنان مشکل دارد این هم جایگاه زنان هست از اینم که بگذریم، وقتی میاییم در سرزمین قدیر خوم پیامبر از همگان بیعت گروفت مردان آمدن بیعت کردن بعد پیامبر دستور داد که زنان هم باید بیای بیعت کنه چطوری بیعت کردن؟ شاید ما و شما یک قسمتش را تا هنوز میدانیم ولی نمیدانم این تکر را تا هنوز شنیده یا نه. نقل می کند اونجا یک ظرف بزرگی از آب گذاشتند بعد یک پرده آویختند دقت میکنین پرده آوختند حضرت امیر دستش را به یک سمت ظرف آب و بانوان دیگر دستشان را به اون طرف ظرف آب گذاشتند و به این ترتیب بیعت کردند این معنی است چیز اسلام زن را عفیف می طلبد. اسلام زن را با ارزش میپندارد اسلام زن را امانت خداوند متعال میداند. اما کدام زن هر زن امانت خداست نه بدون شک چون این چیزی نیست زن پیامبر رفته عذاب شده اما زن یک آدم بد آمده در واده خوبان قرار گرفته اولاد پیامبران قبل رفته خراب شده ولی آدمای غیر از خاندان پیامبر آمده در زمره خوبان قرار گرفته است پس زن نمونه باید چگونه باشد زنان در غدیر چگونه جلوه میکند از جمله جلوه های بانوان در غدیر همه مسئله افتش هست آیا زنان هم باید دست بدهند نه چون این چیز در اسلام صحیح نیست چرا چون به افت زن خدشه وارد میشه لذا زنان باید عفیف باشند باید محجوب باشند و این مهم است زنان باید این گونه تربیت یافته باشند و تربیت بیابند مادران ما متوجه دخترانشان باشند دختران ما هنگامی که خودشان مادر میشوند یا حالا دختر هستند متوجه خودشان باشند باید یک زن نمونه و مؤمن و مسلمان باید باشد این است. حالا از این ادامه بدهیم وقت پیامبر چون این بیعت میگیرد نکته دو دوم و مهمی که باز هم برای شما و مخصوص شما دارم بیان میکنم این است زنان بعد از غدیر آمده ان روایت نقل کردند زنان زیادی بودن از جمله زنانی که حالا من یاد کنم از صحابی پیامبر بودن یک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اسلام دخترش بود و پیامبر همراه خودش در حج برد و جمله راویان جدیر قرار گرفت دو ام سلمه یکی از زنان و همسران پیامبر و بانوی محترم و بانوی بزرگوار و ارزدار ام سلمه از همو بانوان است که تا آخرین دم در خط ولایت ماند بگو ای که از ام سلمه نقل میکند ام سلمه میگوید فرزندم متوجه باش که من ولی خدای بعد از پیامبر جز علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و سلام نمیبینم این نقل به مضمون است چون این جملات از این بانوان به با یادگار مانده است از جمله بانوان دیگی که در این حج بود اسماء بنت امیس هست. ایشان اسما بنت امیس در اون زمان زن ابوبکر بوده است دقت میکنین اسما بنت امیس در اون زمان زن ابوبکر بوده است و خانومی است که حامله بوده ولی در این حج شرکت کرده و محمد ابن بکر را در همین مسیر حج به دنیا آورده و همین اسما دقت کنین کار بانوان را همین اسما که این محمدش را آن گونه میپروراند که از جمله شیعیان و شیفتگان خاص علی بن ابی طالب علیه السلام قرار می گیرد. ابوبکر را شما میشناسید ولی محمدش 180 درجه متفاوت است. محمد عبی بکر از جمله افراد است که وقت علی بن ابی طالب علیه السلام به حکومت رسید ایشان را یکی از صاحب منصبان خودش قرار داد این تربیت یافته همین اسماست و این محمد در همین مسیر به دنیا آمده است و جمله زنان دیگهی که باید یاد کنم ام حانی بنت عبی طالب امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیه السلام هست و از جمله خانم های دیگه ای که باز هم یاد کنم عایشه ابن بنت ابوبکر، دختر ابوبکر و همسر پیامبر خداست. اینم از جمله خانم های دیگر و بانوی دیگه ای که یاد کنم دقت کنین فاطمه دختر حمزه سید و و خانم دیگه ای که در این سفر ازش یاد شود همسر زید ابن ارقم هست اینها از جمله بانوان است که از صحابه های پیان برای اسلام بوده و بعد از هم و بعد از صحابه ها هم باز هم بانوان دیگر بودند این بانوان چه میکردند دقت کنیم این مهم هست این بانوان آمده غدیر را نقل کردند یعنی غدیر که ما و شما امروز ازش تجلیل میکنیم از جمله یادگار همین زنان است که از جنل های پیامبر بوده صحابه های پیانبر بوده و بعد از اون هم دختران و زنان بزرگ اسلامی بودن که قدیر رو امروز به ما و شما رساندند. نقطه ای که در اینجا باید به اون توجه کرد چیست چی کسی میتواند روایت نقل کند امروز شما بانوان و شما خانم هایی که در زمان کنونی زندگی میکنید و از زمان پیامبر تا همین لحظه این غدیر به ما و شما رسیده آیا میشود که شما هم در غدیر نقش بازی کنید بلی باید این نقش رو بازی کرد چگونه باید نقش بازی کرد اولین چیزی که باید به خاطر نقش بازی کردن قدیر توسط یک بانو انجام بگیرد و صورت بگیرد یاد گرفتن آموزه های قدیر و دوم عمل کردن به آموزه ها و معارف قدیر هست خانومیه که نتواند از قدیر چیز را درک کند نمیتواند وارث قدیر باشد خدا رو شکر میکنیم که مجلس ما خوب هست و بانوان هستن در این مجلس این خیلی جای خوشحالی است و خوب هست می خواهم تأکید کنم اگر بانوان اهل سنت همچون آیش زندگی کند راوی غدیر باید باشد اگر بانوان اهل سنت همچون بانوان دیگری ارزشمند صدر اسلام قرار بگیرد باید از غدیر به ایرس گرفته باشد و غدیر رو به فرزندانش به دخترانش و به بقیه به ایرس بگذارد و نقل کند اگر چون این شد همطور که یاد کردم قایش بنت ابوبکر یکی از همسران رسول خدا و یکی از افرادی است که قدیر رو نقل کرده است و همینطور دختران و بانوان شیعی اگر میخواهد بانوی بانوی ارزشمند بگردد باید همچون حضرت زهرا غدیر را به ایرس بگیرد و به ایرس بگذارد و الا ارزش ندارد پدران و مادران گذشته ما غدیر را به ما رساند حالا در اینجا باید توقف کند نباید توقف کند که چی ما نقش بازی بکنیم چی نکنیم چی غدیر را به فرزندانمان یاد بدهیم چی ندهیم اراده خداوند متعال بر این است که این قدیر باید تا روز قیامت بیماند و در آخر الزمان قائم آل محمد باید ظهور فرماید و دنیا را پر از عدل داد کند و یک بار آموزه های قدیر در جهان حاکم بشود. حال شما اگر نقش بازی کردید در قدیر خوش به حال شما. اگر نکردید اسلام ضرر نمی کند. قدیر از بین نمی رود. هستند بانوان ارزشمند، و خوبه که این قدیر را نسل به نسل انتقال خواهد داد و بدا به حال اون مرد و اون زنیه که بتواند از آموزه های قدیر به دیگران منتقل بکند و نکند که اینها در روز قیامت باید در پیشگاه پیامبر اسلام خدای نخواست سرخم بماند این چونین است قدیر و برای این که این چونین باید بود اولین مسئله که مهم هست آموزش هست علم هست تا میتوانید علم بیاموزید بعض علم ها واجب است بر همگان واجب است دقت کنین از جمله علومی که واجب است علوم اسلامی و واجبات هست همونی که ما و شما تحت عنوان واجبات اسلامی میشناسیم این مهم است، فراموش نکنید، علم های دیگر را مختید خوب است ولی علوم اسلامی واجب است و این رو باید یاد بگیرید بعد از این که علم اسلامی رو یاد گرفتید باید انجام بدیم. تفاوت یک مسلمان غدیری یک زن مؤمنه قدیری با غیر قدیری در چیست؟ در سرزمین غدیر یک عده از مسلمان ها آمدن گفتن یا رسول الله خودت امیر رو امیر قرار دادی یا خدا پیامبر فرمود هیچ کار را از پیش خودم انجام نمیدم گفت که اگر از طرف خدا عذاب نازل بشه مرا حلاک کنه همون لحظه میگه سنگ از آسمان آمد خورد به سر اون بدبخت و حلاک شد تفاوت زن و مرد قدیری با غیر قدیری همین است. اون نفرم مسلمان شده بود و پیامبر تسلیم شده بود اما چی؟, چی سبب می شود و تفاوت ایجاد می کند مسئله دیگه که اینجا تأکید می کنم خوب توجه داشته باشید مسئله اطاعت است اطاعت از ولی خداست. متوجه باشید همه ما و شما بندگان خدا هستیم باید از خداوند متعال اطاعت کنیم خداوند متعال فرموده از پیامبر اطاعت کنید باید از پیامبر اطاعت کنیم و خداوند متعال فرموده باید از ائمه دوازده گانه اطاعت کنید باید اطاعت کنیم و همینطور نکته اخیر خداوند به زن و مرد دستور داده که از دستورهای خوب والدین اطاعت کنید باید اطاعت کنیم همینطور وقتی به بانوان دستور میدهد از شوهرتان اطاعت کنید باید اطاعت شود و الا خانم نمیتواند قدیری باشد چون شوهر وقتی یک چیز را دستور میده یا دستور دین است که صد درصد واجب میشه یا در نفع خانوادهش هست که باز هم اگر قربتا الالله از دستور شوهر اطاعت کند خدا برای ثواب میدهد یا بر خلاف دستور خدا خدای نخواسته دستور میده که اینجا نباید اطاعت کند همگان ما و شما زن ما، مرد ما موظفیم از دستور پدر و مادر پیروی کنیم مگر آنجایی که خدای نخواسته پدر، مادر، شوهر، همسر، برادر، خواهر هر کسی که هست خدای نخواسته بر خلاف دستور خدا دستور داده باشد. بنابر اون پدری اون مادری که ما را از دستور ولایت ائمه 12گانه سرپیچی کنیم اطاعت نکردن از پدر مادر در چنین جای واجب است. اما اون پدر و مادر که دستور میده از خدا پیروی کن از رسولش پیروی کن از خاندان پیامبر پیروی کن این دستور واجب است اطاعت شود شوهر که به خانم دستور میدهد دستور اسلامی را رعایت کن این دستور واجب است باید پیروی بشد این است اون خانم غدیره. و آن از آن خانم غیر قدیری امروز اگر بخوایم قدیری باشیم از جمله های قدیری عرض کردم آموزش است یک اطاعت کردنس دو بنابر این اگر میخواید از جمله راویان غدیر بگردید اول درس بخوانید بعد استاد باید به خانوم اجازه بدهد که فعلا شما اجازه دارید که توسط من مثلا این روایت را رو از فلانی از فلانی نقل کنید نمیدانم خواهران ما در اینجا چقدر آشنا هستند در این زمینه روایت اینطوری ساده نیست که آدم از روی کتاب بخونه این کار در اصلش کار اساسی نیست روایت چگونه نقل می شود روایت این گونه نقل می شود مثلا من میگم بنده از فلانی فلانی از فلانی فلانی از فلانی بالاخره میرسه به یا ائمه دوازدگانه یا بالاخره به خود پیامبر اسلام میرسه میگم من از فلانی هم طور نقل میکنم که پیامبر اسلام در سرزمین جدیر فرمود من کنتو مولاهو فهذا علی و مولاه اصل نقل روایت این گونه هست وقت روایت به این ترتیب نقل شد ارزش دارد و ایلا از زبان موتو که ارزش ندارد چرا چون نبودیم در زمان قدیر وقت نبودیم باید این سلسله رعایت بشه بنابراین تأکید میکنم بار دیگر آموزش یک عمل کردن با های قدیر دو رساندن پیام قدیر به نسلهای بعد سه این ستا وظیفه را میتواند زن انجام دهد مرد انجام دهد همگان میتواند انجام دهد و امیدواریم بانوانی که در این مجلس حضور دارد از جمله اون بانوانی بگردد که این کار را بتواند انجام دهد و اگر این کار توسط شما انجام شد خوش به حال شما و می شود شما را گفت از اون جمله بانوان آیندار قدیر و از جمله بانوان دار قدیر و از جمله بانوان راوی قدیر قرار گرفته اید و الا تفاوت ما و شما با بقیه هیچ معلوم نمیشه پیدا نمیشه همه زن زیاد هست یعنی جنس ماده انسانی زیاد است از اون طرف مردان هم است جنس مردانه انسانی خیلی زیاد است تفاوت یک زن و مرد مسلمان در اینجاها پیداست و الا همگان زن و مرد هست بگن از خداوند مهربان امیدواریم که این جلسه امروز را در خیر و فلاح و رسلگاره همگان ما و شما قرار بدهد انشاءالله تعالی امیدواریم حداقل این سه تا نکته را که عرض کردم توفیق بیابیم که با این کار هست شما ممتاز می شوید و الا تفاوت بین شما و اون خانم های دیگر ایجاد نمی شود امیدوارم خانواده ها هرچه بیشتر با دستورات اسلام و محبت اسلام پیامبر اسلام و اهل بیت بیشتر معنوس و شیفته بگردن انشاءالله تعالی امروز هم که روز چهارشنبه است معمولا در شب روز چهارشنبه مؤمنان دعای توسل را میخوانند. ما و شما هم اعیمه دوازدهگانه حضرت بیبی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و خود پیامبر اسلام را در پیشگاه خدا شفیع قرار میدیم تا خداوند مهربان نظر رحمتش را ما و شما عنایت بفرماید به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد